به نام خدا در یک شهر کوچک و زیبا یک مغازه ساعت سازی جادویی وجود داشت. نیما به همراه پدر بزرگش در مغازه قدیمی کار می کرد و راز تعمیر ساعتهای جادویی را از او آموخته بود. یک روز ساعت بزرگ جهان از کار افتاد و همه فضلها سردرگم شدند. هیچ کدام چه زمانی باید بیایند و برود برف روی گلها میبارید، بارید برگها سبز می و همه چیز به هم ریخته بود پدر بزرگ متوجه علت این اتفاق شد و گفت ساعت جهان از کار افتاده و کسی میتواند تواند آن را تعمیر کند که به قله تیک تاک سفر کرده و ساعت را به کار بیاندازد نیما با شنیدن این حرف تصمیم گرفت با کول پشتی پر از ابزار و یک قطب نمای خاص به کوه تیک تاک سفر کند او در راه خود به یک درخت سبز و پر از شکوفه رسید اما درخت ناراحت بود نیما به او گفت سلام درخت مهربان چرا غمگین هستی درخت پاسخ داد به برگ ها و شکوفه های من نگاه کن الان با این برف شدید از سرم یخ می زنم و تمام آنها را از دست می دهم نیما کمی فکر کرد و به خورشید گفت اگر می توانی کمی بیشتر به درخت بتاب و او را گرم کنند. خورشید درخواست نیما را قبول کرد و درخت خوشحال شد نیما دوباره به راه افتاد کمی که از بالا رفت به یک خرس قطبی خابالود رسید که از گرما کلافه شده بود نیما تکه های یک ابر شکسته را کنار هم قرار داد و با ساختن ابری بزرگ برای خر سایه ساخت تا خنک شود نیما باز هم رفت و رفت تا به قله رسید ناگهان متوجه شد یک چرخ دنده در وسط ساعت بزرگ شکسته است او با وسایل داخل کوله پشتی تلاش کرد چرخ دنده را تعمیر کند اما چرخ دنده خیلی سنگین بود و نمیتوانست آن را جابجا کند نیما تصمیم گرفت به سراغ خرس برود و از او کمک بخواهد خرس وقتی ماجرار رو شنید قبول کرد و گفت همانطور که تو به من کمک کردی من هم آمادم که به تو کمک کنم. آنها با کمک هم ساعت را تعمیر کردند و همه چیز به حالت عادی برگشت. بله بچه ها ما هم باید در زندگی مانند نیما برای حل مشکلات تلاش کنیم و همچنین در سختی ها به دوستانمان کمک کنیم.